اشتغین اومدن خواهد کردن مثلا شما گفتم بازادون گلزیر یهودی از آلبانی با میشه میاد میره تو دانشگاه علیه از هر سالها درس میکنه مثل لباس مسلمان میشه مثل مسلمان بزرگ میگیره مثل مسلمان میره تو نماز جمعه چیکرد میکنه سالها و ابن این کتاب به تفسیر اون میده میسه گلزیر یهودی که از زد قرآنه خود زد قرآنه